سلام به همه شنونده های کانال هزار افسان داستانی رو بهتون تقدیم میکنم به نام آرش کمانگیر امیدوارم تا آخر این داستان همراه من باشید یکی بود یکی نبود روزی روزگاری روی زمین خدا بین کشورای کوچیک و بزرگ دنیا دو کشور با هم همسایه بودند، یکی ایران یکی توران پادشاه ایران منوچر شاه بود و پادشاه توران افراسیا. این دوتا همیشه مثل همه شاه ها به فکر کشورگشایی و قدرت بودند و هر کدوم دلش میخواست همه سرزمین ها تحت حکومت اون باشه. برای همین با هم دشمن بودن و بینشون جنگ بود. ایران و توران هر بار با لشگری بزرگ به هم حمله میکردند. این یکی ات زیادی از اون یکی رو میکشت و نابود می‌کرد. تو یکی از همین جنگا سربازای دو تا کشور به سرزمین سبز و خورمی به اسم مازندران رسیدند. هر دو سپاه از بزن و بکش خسته و درمانده شده بودند و پادشاه های دو کشور یعنی منوچهر شاه و افراسیاب تصمیم گرفتند مرزی بین ایران و توران بکشن و هر کدوم از اونا به مرز کشور خودش بره و جنگ تموم بشه همه خوشحال شدن دوتا پادشاه گفتند بهتر کمانداری بیاریم و تیری بندازه تیر اون هر جا به زمین نشست همونجا مرز دوتا کشور باشه این حرف دهان به دهان گشت و همه منتظر بودند تا قوی ترین مرد کماندار بیاد و تیر بندازه بین مردم ایران کمانداری بود به اسم آرش. مردی با خدا و دل پاک و خیلی هم قوی. آرش کشوری رو با جان و دل دوست داشت. اون که نمیخواست بین مردم جنگ و خونریزی بشه برای این کار داوطلب شد. آرش از پادشاه دو کشور فرصت خواست. اون وقت به جنگل رفت و از بهترین درختی که میشناخت شاخهی رو جدا کرد. و تیری محکم ساخت وقتی کمانشو آماده کرد از خدای مهربون خواست تا به اون قدرت و همت و غیرت بده صبح آفتاب که از پشت کوه بیرون اومد و دنیا رو غرق نور کرد با خودش امید و روشنایی آورد آرش با تیر و کمونی که دو دستش بود از کوه پایین اومد و بین لشکریای دوتا کشور وایساد همه مردم از پیر و جوون منتظر وایستاده بودند. ادهیم تو دشت و صحرا ادهیم رو بام خونه هاشون. سربازات دو, دو طرف و وکیل و وزیر صف به صف. آرش پیرنشو از تنش در آورد و رو به جمعیت اول خدا رو صدا زد و بعد گفت ای مردم من با تنی سالم و دل پاک آماده پرتاب این تیرم. بدونید وقتی این تیر از کمانم میرون بره من میمیرم چون میخوام همه ی قوتم و به این تیر بدم تا تو دورترین نقطه روی زمین بشینه همه برای آرش دعا میکردن و زیر لب خدا خدا کردند آرش تیر رو تو کمان گذاشت و باز هم خدا رو صدا زد اون وقت کمان و کشید و تیر از کمان جدا شد و مثل پرنده ای تیز پرواز هوا رو شکافت و رفت. آرش روی زمین افتاد و همون موقع مود. تیر آرش رفت و رفت. خدای مهربون دعاهای آرش رو بی جواب نزاشت. به باد گفت تیر رو با خودش ببره و دور دور دور بشه. اون روز تا غروب تیر تو راه بود. شب گذشت صبح شد و آفتاب تا بید. تیر همینطور رفت تا اینکه ظهر شد و خورشید رسید وسط آسمون تو همین وقت تیر آرش روی تنه درخت گردو نشست منوچر شاه و افراسیاب قبول کردند که همونجا مرز ایران و توران باشه مردم به خونه‌هاشون برگشتند سربازای تیر و کمانشون کنار گذاشتن و جنگ تمام شد همه جا و آرام شد، دوستی بپا شد و یاد آرش کمانگیر برای همیشه تو قلب ایرانیا جاودانه شد. کانال تلگرامی هزار افسان، داستان‌های افسانه‌ای ای نشانی کانال تلگرامی tme نقطه می مهران